بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم شیخ توصی رحمت الله علیه تو کتاب آل اصول الفقه که معروف ادّافی اصوله کلامی رو در بحث خبر واحد مطرح میکنن که یک نگاه دوگانه ای رو بهش به دنبال داشته تو اصر حاضر ایشون میاد بحث رو میبره در رابطه با مشی فقهای شیعه در استناد و مستند کردنه فتواشون میفرماند که فانی فا وجتو مجمعتا عل العمل به هذه الاخبار از اینجا بحث رو شروع میکنن تا می رسن به این عبارت حتی ان واحدا منهم اذا افتا بشی لا يعرفونه تا جایی که اگر یکی از فرقه های امامیه فتوا به چیزی میداد که باقی این رو نشنیده بودند یا تعالی این قبول نداشتند سالوه هم اين قلتها ازش میپرسیدن این را از کجا نقل کردی این کلام ظاهرش که در واقع یک فقیه برای اطمینان به فتوای فقیه دیگه ازش نمیپرسه سندش شیه میپرسه که منبعش شیه سعلو هم این قلتها از کجا، کدوم منبع این نقل؟ نقلی فیدا احال هم علا کتاب معروف او اصل مشهور حالا اگر این فقیه این فقهای های دیگر رو احاله میداد و ارجاع میداد به یک کتاب معروف یا یک اصل مشهور و کان الراوی حسقتا لا و حدیثو سکتو و سلم الامر فی زارک و قبلوا اینها ساکت میشدند میپذیرفتند و قبول میکردند کلام این فقیه و فلسفه فقی رو قبول میکردند چرا چون که اینها رو احاله داده بر یک کتاب متقن مثلا فقیه فتوایی بده اینا نشنید باشن میگن شما از کجا نقل میکردی این رو از چه کتابی نقل کردی دست فقها رو بگیری ببره سر کتاب حلبی خب کتاب حلبی کتابی است که برای امام عرضه شده کتاب متقن است یا دست فقها رو بگیری ببره کتاب حریص میگه این از کتاب صلات حریزه همون کتابی است که به این اصحاب مشهور بوده خب بعد میفرمد فرمود و هاذه عادتهم و وسجیتهم من عهد نبی صلوات الله علیه و عالی و, عالی و من بعده من الایمه السلام اینجا یه نکتهی مرحوم شیخ کلامی رو می که می تونه برداشت دیگه رو تو ذهن برخی ایجاد کنه و کان راویه سقتن لا یونکر و حدیثو بعضی بزرگواران از این چنین برداشتی میکنن که درسته کتاب باید کتاب مشهور باشه و این می تونه یک معید باشه بر این نگاه کتاب محور قدمائی ولی نکنید و کان راویه سقتن حتما باید سنت هم صحیح باشه راویان اون سنت باید سقه باشند پس نمیتونید با این عبارت دفاع کنید از اون نگاه قدمایی و اینکه قدما به جای بررسی اسناد احادیث چه کار میکردن؟ میومدن کتاب رو بررسی میکردن یعنی تکیهشون بر کتب بوده چرا این عبارت با کان راویه سقتن مانه از این برداشت میشه؟ در پاسخ عرض میکنیم که وقانا راویه ثقتن این هه در راویه به چی برمیگرده آیا ما قبل از این حدیثی داریم که این برگرده به حدیث یعنی راوی اون حدیث تازه نه راویان راوی اون حدیث نه تنها چیزی که ما تو جمله قبل داریم کتاب معروف اصل مشهوره یعنی راوی اون کتاب باید ثقه باشد راوی کتاب یعنی چی خب ممکنه بگید آقا راوی کتاب یعنی مؤلف کتاب ولی نه نکته دقیق این که راوی کتاب یعنی کسی است که این کتاب رو از مؤلف دریافت کرده اولین دریافت کننده حدیث که معمولاً هم اعتبار اون کتاب بخشش مربوط میشه به اون شخص و همین که اشتهار اون کتاب به نو این شخص خودش حسی از اعتبار داره پس طبق این کلام شیخ طوسی جدا از این که کتاب باید کتاب مشهور معتمد باشه و معلف جایگاهی داشته باشه حتما باید راوی کتاب در کننده اولیه کتاب هم ویژگی خاصی داشته باشه به عنوان مثال تو کتاب علاء ابن رزین شیخ توصی میفرما چهار تا نسخه داره وله اربعون و صح اربع منها یک منها روایت حسن ابن محبوب حسن ابن محبوب راوی کتاب علاء چون راوی کتاب علاء اصلا این کتاب این نسخه مشهور میشه به نسخه حسن مشهور به حسن ابن محبوب پس اینجا شیخ ما رو میبره به این نکته متوجه میکنه که راوی کتاب بایدهزی از اعتبار داشته باشه. چه اینکه ما داریم گاهی اوقای کتاب در بالاترین درجه اعتماد و ملفش در بالاترین درجه وساقت ولی به خاطر اینکه راویش یعنی اون کسی که دریافت کننده اولی است انقلت رو شخصیت شخص یا هر بحث دیگه ما کتاب رو نمیتونیم بپذیریم یا بخشایش رو نمیتونیم بپذیریم. دقیقا همون وضعیتی که مانسات به کتاب یوننسپ نبد رحمان داریم. و كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحه يعتمدوا عليها الا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد ولم يرويه غيره ناكنين راويه كتاب محمد بن عيسى است به هر دليلي حالا دليل شخصياتي يا اشكال طبقي يا هر بحث ديگه باعث شده بخشی از تراث حدیثي يونس در مجموعه كتابش پذيرفته نشه نظر شخصيتي مثل ابن وليد وسعد خب پس وکانه راویه سقطن دوباره ما رو میبره تو همون نظام کتاب محور قدمایین تو همون نظامی که تکیه بر همون کتاب های حدیثی بوده و همون نکته بعدی سقطن لایونکر و حدیث و آیا دو تا ویژگی برای راوی کتاب برمیشماره؟ خب ما میدونیم شیخ توسی یک نگاره. دیده که صدها راوی کتاب اصحاب هیچ توسیقی ندارن و شیخ توسی داره اعتماد میکنه به این نسخ به این ها میگیم آقای شیخ توسعی خودت که به این پایبند نبودی شیخ توسعی میفرماد نه لایون و حدیثو تفسیریس از سقه منظور شیخ توسعی میخواد اعلام کنه که نه این که باید اینها وسایلشون اهراس و تصریح شده باشد بلکه منظور از سقه یعنی میزان اعتماد به اندازه لایون و حدیثو باید باشد یعنی همین که منکرالحدیث مردود ول احادیث نباشن کفایت میکنه به همین خاطر کسانی از این در واقع مقبول جدا میشن که درباره ضعف و انقولتی اومده باشه مثلا شما محمد ابن سنان رو در مسیر کتاب مياه مدائن ببینید نجاشی میگه با طریقه او اعف و, و هو محمد ابن سنان اینجا مونکرال حدیثه محمد ابن یزا در مسیر کتاب های یونس نزد قمی ها یا ابن ولید بالاخره در محدوده اندکی مونکر داره میشه یعنی قابل پذیرش نیست این تراث پس بخوایم جنب کنیم این جمله شیخ توسی هیچ دلالتی بر لزوم ارزیابی اسناد در منظر شیخ توسی نداره و کانن راویه به کتاب میخوره کتاب حدیثی و منظور از راوی اولین دریافت کننده و شاگرد مؤلفه و ویژگی مهم در راوی باید منکر الحدیث نباشه یعنی مردود نباشه شخصیتش همین مقدار کفایت میکنه بر محمد و محمد